صداها در هم و بر هم است. صدای آدم ها در صدای ماشین ها گم می شود. داود دنپایی مادر را می پوشد و میدود چادرم را برمیدارم چفته چفت در اتاق را می اندازم. دروازه را باز می کنم. ملیه را می بینم. میگوید گوید. گربانو بودو. منتظرم نمی ماند خودش می میگویم چه خبر شده؟ نمیدونم دونم. همه روستا به جنبش در آمده است. بزرگ و کوچک به طرف قبرستان میدوند شهره محسن پسر زلفقار جلو چشمم ظاهر میشود فکرم را بلند میگویم نکنه محسن ملیه میستد و روبر می‌گردند. به خودم میگویم چه کار کرده خودم را به او میرسانم و بازویش را میگیرم خدا نکنه زبونم لال ملیحه آرام روی زمین مینشیند یک تویوتای لندکروزر به سرعت از کنار من میگذرد پشتش بر از ماسه است سنوبر زن مرتزا کل از روبرو میآید کوله ی یونجه را به پشتش بسته است. پشتش خمیده است و گردنش را مثل لاکپشت بالا گرفته است. چه خبره مش صنوبر؟ والا چه میدونم؟ کرور کرور جمعیت سر قبر عزیز زللا بک جمع شدن و شعار می میدن مرگ بر این مرگ برون. چه میدونم والا؟ ما که سر در نمیارم. خد ای نکرده کسی که نمیگذرد حرفم تمام شود. نه خدا رو صد هزار مرتبه شکر نه. مکس میکند. میگوید انشاءالله تمام میشود. میدانم این حرف رو برای دلخوشی ملیحه میزند. ملیحه هنوز هم نشسته است. دستش مثل یخ سرد است. رنگ به صورت ندارد. بدون هیچ حرفی هر دو راه میافتیم. کوچک و بزرگ از کنارمان میگذرند. همه شتاب دارند. جمعیت تا نزدیک قصالخانه خانه کشیده شده، چهرها کم و بیش غریبند اهل محل دورا دور ایستادند و به سخنان سخنران گوش می کنند دست مدیه را می کشم و از بین زنها پیش می رویم. سخنران روی سقف لندکروزر ایستاده است، جوان است و لاغرندام، با یک دستش بلنگوی دستی را گرفته و دست دیگرش را رو به جمعیت تکان می دهد زنی می گوید، کجا خواهر فکر می کنم حتما پایش را لیت کرده ایم محل نمی گذارم خودم و ملیه را به ردیف اول زنها می رسانم جایی نزدیک قبر عباس جان می نشینیم دست ملیه را فشار می دهم می دست و میدانم نگران است صدایی سخنران لاغراندام بر برخلاف ظاهرش محکم و استوار است انقلاب از آن کوخ نشینان است وارسان این انقلاب مستضعفین هستند و و ان نومن نعللزین از تز فی الارزه و نجعلهم هم و هم مردم انقلاب نکردن که کمونیست ها، بی دینان، بی درد و نوکران امپریالیسم شوروی ملیه با صدای ضعیف میگوید. گل بانو نست کردم اگه محسن آزاد بشه چهل شب جمعه برم پیریه روشن کنم. دستش را میفشارم. میگوید گل پریشب خواب دیدم چادرم و توی مجلس سرروسی گم کردم. میدونستم خواب بدی دیدم صبح کللی سر رفتم دم قنات شمسابات همه خوابمو برای آب تعریف کردم تو با خودش ببره چادر بخت آدم گلبانو نکنه نمیگذارم گذارم حرفش تمام شود میگویم. زن چپه زن بغل لستی می ساکت میشویم. نمی دانم سخنران کی سخنانش را تمام کرده که به چالاکی از لند کروزر پایین می میپرد همراه با پریدن او جوانی از بار لند کروزر چند پتک کلنگ و بیل به جوانهای اطراف لند کروزر می دهد سکوت سنگینی قبرستان را فرا گرفته است ملیحه میگوید یا فصل میخوان چیکار کنه بلندگوی دستی میقورت نه شرقی نه غربی جوانهای های پتک به دست به قبرهای اختر و امیر میرسند. صدای خورد شدن قاب شیشه عکس اختر رعش در جانم میاندازد. دست ملیه آشکارا در دستم میدرزد. جوان دومین پتک را بر سر قبر فرود می آورد. صدای پتک در صدای جمعیت گم می شود. نه شرقی، نه غربی. جوانهای های کلنگ به دست به کمک جوانهای های پتک به دست ولی حزیر گوشم میگوید پانو صدایش میلرزد میگویم اگه خانم سلطان بدون سکته میکنه نمیدانم مرد کی بالای لنتگروز رفته است همه محفله ساخت و ساز جوانها شدند آجرها دست به دست میشود و به دست عثمان آدلی میرسد ها صاف شدند هیچ علامتی دال بر اینکه که روزی روزگاری اینجا قبر دو جوان بوده است وجود ندارد پچپش شروع می شود چه کار می کنند؟ آخر زمونه به خدا و یه نه سگو که تو قبرستون مسلمونا دفنه می کنند ای خود نه مردیم و خاری از ازالو بگم دیدیم میگن گن می قصالخونه خونه درست کنه. اگه اینا نجستن نباس تو قبر سون. ما که قصالخونه داریم اون که داغونه. خدا به داده دل مادرشون برسه خدا؟ اینا که خدا قبول ندارن سخندران برخلاف جوان قبلی آرام صحبت می کند مردی جا افتاده است قد بلند و چارشانه است اصلا به طرف زنها نگاه نمی کند فقط نیم رو خش را می بینیم. ما در آغاز راهیم. انقلاب به آسانی به دست نیامده که به راحتی از آن چشم بپوشیم. این نهال نوپا؟ ملیه می گوید. یکی نیست جلوی رو بگیره؟ میگویم. گویم. مردم مسلمان منطقه نمیگذارند هوای پاکیزه شهر و رو روستایشان آلوده شود. نمیگذارند جوانان زحمتکش و با ایمانشان مسموم شوند. دیواره های اتاقک بالا آمده است با هر کلمه سخنران آجری به دیواره ها اضافه می شود او تند و فیرز کار می کند جوانکی به دنبالش روی ردیف آجرها ملات می کشد ما در برابر تاریخ در برابر نسل های آینده در برابر مردم مسئول هستیم در این شرایط تاریخی در این روزهای حساس همه ی ما مشهدی ذوالفقار به علاغشتکی داده و به حرفهای سخنران گوش می کند. خرش چورت می زند. بختیار، راننده تراکتور حاج ابراهیم پشت فرمان تراکتورش نشسته است. دستایش روی فرمان است و سرش را رو روی دستایش گذاشته است. نمیدانم خوابیده است یا به حرفهای سخنران گوش می کند. خجو دیوانه با پیت خالیش از پشت تراکتور بیرون می آید. حفظ انقلاب از آفات از تهاجم دشمنان، از دسایس شیطانی امپریالیست های شرق و غرب. تق تق تق همه سرها برمیگردد. خجو دیوانه به پیت خالیش می میکوبد. سخنران ساکت می شود. ملیحه پقی میزند زیر خنده. خجو با هر زرد فریاد میزند. هو هو. جوانی روبروی اش می ایستد. سعی میکند پیت را از او بگیرد. خجو جیغ میکشد. رقعی زن کلبباس را می بینم که از میان مردها خودش را به خجو می رساند جوان پیت را از خجو می گیرد خجو جیغ می کشد بازوی خجو را می گیرد بلنگو می قرد. نه شرقی نه غربی جمعیت فریاد می زند نه شرقی نه غربی صدای خجو را نمی شنبم. اما می بینم که رقعی او را خرکش می کند ملیهه می گوید بلنشو بریم بو بو بوی لاش بو بو مردار بوی بزه مرده زلفقار میخوام بیارم بالا وضعیتی قرمیز کفن چه پاره نکن پاشه بگی داره لیز میخوره من اگر بگی بالاتر. بیا بیا لامسته بلا کرده یه چیزی بخور علامتی که همک همکنون... نگاه کن پسرموت چرا ایش که سیگاه نمیکشه مزیگم است دستم آمدم یک کاسه آب روی شانه ی راست قربان الالله تو اگر بر خشنوی نو کسی سه تا نه تا چهار تا قرنب قرنب اینک دشمنان انقلاب نهاله نو پا افس فل آب به قبر بسن اردوت پاشو بگیر نترس دیگه موی خنجر تو رخت ترخانم شو باید بکنم تو کفن بسم خان نمیتونم روسری تو ببن رو دهن و دماغ تیم مردنیه ددیمه فیتیلشو بیار پایین اسمشونو گذاشتم من؟ برین چارغت کنین سرتون هم رزم. حالا چرا زیر درخت گردو درختی در ببریمش دکتر زنم داوود داوود برق گرفتش کفنی میخواد زنده ها ترس دارم لباس بو میده لباسات تازه عوض کرده خدا این کار کرد آقای دکتر هزیون میگه وقت از قبرسون گذشتیم خانم سلطان آروم باشی بلا سر بچه اومد ممکنه صدا تونه بشن زنگلت. خان دختره ترسیده نکه کلنگ بکن زیر سیما اسم خودشونو گذاشتن و دلش بند نمیشه من و خانم بس. کاری بکن پرده ها رو بگو و پهن کنی یه شب تک و تنها اومدم تو قبر رستم. با بیلین بذاری نشون تو قبر بسه گلم از دستم رفت آقای محمدجانی گل بانو بگو واطئه بخون سنگرم چرا بگو گل بگو دختر روشته با با دستم وار میبریمش خونه ما رونسی آقای محمدجانی کباب نمیخوام به مرده ها چی کار داشتی مردم مسلمان کمک میخوام دستن تنها بچم دختر جوون که ببندین به بازوش ایام چگونه فولاد آب دیده گودش که موهاش از کفن بیرون زده نیارمشون توی باغ خانم سلطان امیر آقا آناهار حاضره چطوری خوشگله خانی نرینه است باید مرد بسپرتش پول میخوام یه دکون باز کنم مرده از قفا اومده بودن بیر برسه تو بخو مونیر خانم دسته یک گل مرده را افتاده. همه میخوام برن تو باخچه ها تقدیرم بود برق گرفتش برق آسمون حریق گندوم سهر. الله محمد رباس اختر برای گل حمله یه هوایی نه نه نه ترس شونه یه چپشو به گستان بوی لاش قبر خدا بیا مرز همه گل زن دارا بشکافتن مرده ها راه عباس جان با کفنش صبر خرش ای همه مرده بابا زیر درخت انار خوابیده با کفنش چهار تا از یک خونواده تو یه ساعت من کفنش گاز گرفت اینا چی میخونن مکر چونن می جاستین شاعر قافیه را کودکان آدینه رو به قبله گوشت پوستش وروم میبرمش بیمارستان فقط بلاتن شعر بخونه دو تا اورات داستان ها تاق به دلشون میذارم اکبر وردهیم خان دف میکنه غروم غروم غروم اگه سنگ حرف در بیاد آیا دختران نباید از ترسشون میخونه. ابره همه گل شکاف کفنشه از رای دندوناش در آورد گلبانو خیلی خوشگلیا. ها امیر آقا خانم سلطان کارتون داره گلبانو یه ماچ میدی خان نرینه رو نباید زن بسپوری گلبانو چرا در میری امیر آقا ببخشید میخوام اتاقتون جارو بزنم محسیت داره ماشاءالله به این تن و بدن شما فقط بلد این شیر رو بیت بخونی بعد از این روزت نیومدی گلوانو کتاب رو بذارین تو پلاستیک نبوزن چه باید کرد؟ خان خاطر جمع بو بو میدم سرمایه بزرم گلوانو حرف بزن حرف بزن رو از قبل بیرون آورده حرف نزن آمپول آرام بخش چی کردی بایی دختر بیچاره؟ ا... آقای دکتر شوکه شده قبر و جای منو صاف در این مقتعی خاص؟ فراموشی نعمتیه شکر شک آ به قبر و با تو برق آسمان زد سیگار مایات بهش بدیم شک خانم پرستار شوک شک شک